بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما تظهر هل... ست سيحدث نصائحه أما محمد بن حنبل وشني النصائحة بعد تشده القرآن والسنة وذن أبليش تمسك بقرآن والسنة فهم سلاف أمات هكذا بدعاته و سبومی عدم هم نشینی به اهل بدارد سؤالی که پیش میاد اینجا فرموده خداوند الذین استمعون قول یا احسنه. اونایی که سخنان سخنان, سخنان را میشنمن از بیاندگان مختلف بعد تابع نیکترینش میشن اون نیکتر هست یا نیتر هست را میگنن بگیه رو را ها میکنن سؤال اینجا مثلا همیشه خداوند اینجا قول را مطلق گفته از هر قائل ما میتونی رو بشنویم. شاید اون راست شاد نه یا نه ناد... درست باشه یا نادرست باشه ما درستشو میگیم و نادرستش رها می این آیه در تعارض در تعارض عدم همنشینی با اهل بدعت واقع میشه شما گفتی که با اهل بدعت نشینیم با آنها سخن ندیم با آنها بحث و جدال نکنیم در اینجا خدا هم میگه که شما حرف رو بشنوید پیروی از کوفتری نش بکنید نکنید بحث سخن شنیدن وقتی خداوند میگه فلا تقعود اونجا گفت فلا تقعودو ننشینید و ننشین وقتی که میگه ننشین یعنی سخنشو بشنو اهل کفر اهل الحاد کسانی که مسخره به قرآن میکنن مسخره به دین خدا میکنن مسخره به سنت الاساس و میکنن خدا میگه باشو نشین یعنی از باب و اولا هم سخنش نشنو پس نو کنید بحث قول این گوینده هر گوینده ای نیست کسانی که اهل برهن، اهل تقوه هستن مادرشون میشه میشنویم رو سر کج، ولی کسانی که اهل گمراهی و الحاد و کفر و زندگان، مادرشون نمیشه می‌بیند چون خدا گفته نمی‌بیند. پس این قول مطلق نیست. قرآن رو باید با قرآن تفسیرش بکنیم. قرآن رو باید با قرآن تفسیرش غیر از این که خدا میگه فیت تبعونه احسن این احسن بودن را کی مشخص میکنه کی میدونه تشخیص بده که این قول آن شخصی نهاب را میزنه؟ قولش نیک هست یا نیک نیست کسی که درایت تام به قرآن و سنت داشته باشه به خاطر همین ما اجازه نداریم با اهل بدعت بحث و مناظره بکنیم مگر این که تمکن علمی داشته باشیم خداون بخی این که و جادل هم احسن با کی بانها بحث بکنیم احسن و جادل هم بلتیه احسن وقتی که شخص متمکن باشه قدرتمند باشه بله امام احمد اومد شبهاتشون بررسی کرد با یک مناظره قسمتی از یک مناظره محمدم بفتیم بختیم حلی بدارد بله شخص مکن علمی داره بله میره بحث میکنه تا اونها را دعوت بده همونطور که نوسا و حارون رسدن دعوت دادن فرعون غیر از اون احسن بودن با استدلال اون و استدلال اونها به قرآن و سنت و درایت اون اشخاص بایدم رافضاره نیک داشته باشد نه که با خوشنعت بیان اونها رو دعوت کنه. فقول الله قولا لیجنا. خدا دستور میده به مسیح و حارون با بانیتی اونها رو دعوت. پس احسن بودن تنها در استدلال نیست، احسن در استدلال، احسن در اخلاق، در رفتار در نوع برخورد. همه اینها با مراعات, این مراعات بکنیم. در داشتگی اینکه ما به بزرگتر خودمون میگیم کوچکتر میگیم با سن مراعات بکنیم، عذاب را با مراعات بکنیم. همه اینها شاملش بشه. این نیست که ما بگیم. که من میرم نقامت خوجت میکنم من میرم نمیدونم فرام باهاش مناظره میکنم بله خدات ازمون خواسته مناظره بکنیم با جاده هم به لتی هستن ولی اینکهجی کسی که اهلیت صورتسته باشه نهرکزی خودش را در معرض فتننه و شبه بنداازه. چون خداغت ما را تحذیر داده که نشینید از بابا اوله هم نشنویم. ما بدرسییم از خودمون یم از قلب خودمون گ سبب نشه که ما در صبحات و شهات یافتیم همطور به ما بسته یاد میکنیم. کسانی میگن بودن با ما. أهل الدين والديانات، بل كتير بدين علم شنو خوردن، راسا بأهل بدعة شاسن بقوله بقوله وهالشون. بحس أهل بدعة بحس كيميش، بحس نشانهاشون، كتير ما بفهمين أهل بدعة كان أهل بدعة نيسن. يك نشانهاي دارن نشانهشون نشانه. علامة إمام أبو حاتم الغزري كي أهل البدع الوقيعة في أهل الأثاث. علامة أهل البدع الوقيعة في اهل الأثاث. علامت اهل بدعت بغض اهل سنته و اونها رو از اونها به بدی یاد کردن نیست ما ما میبینیم شخص میاد کینوار بغضوار میاد مثلا از ابن تیمی نقد میکنه. کنه از ابن محمد نقد می کنه از آلبانی ابن باز به بدی اینها یاد می کنه ایمان مگرن نسنی بودن؟ سنی بودن چرا بغضش داری؟ چرا که جرم غالبانی چیه؟ البني فقط اومد احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفت گفت این راوی درش ضعیفه این راوی درش دروغویه این راوی درش بدانه احادیث این ضعیف این ضعیف ابن باز ابن عبدالمجید رحمه الله توجه به این جهودی که البنی داشتن گفتن که آها از لحاظ فقهی پس چون این حدیث صحیحه اینو میگیریم این حدیث ضعیف نمیگیریم البنی خودشان هم اینطور این حدیث صحیحه این حدیث انتقال حدیث ثابته ما میگیریم خودشان بود پدرشم عمر یک سری مخالفاتی کرد در مذهب خودش با توجه به احادیثی که پیش ثابت بود. ها چرا بغض داشته باشین؟ میگه مؤمنین، المؤمنون و والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض نیستن مؤمنین و مؤمنات همدیگه رو نباید دوست داشته باشن؟ چرا بغضش دارین؟ چرا خیلی بغضش دارن؟ من که بحثی ندارم، من خود بهش والله دارم. چرا بعضی‌ها بغض اون رو دارن؟ چرا بعضی‌ها بغض بغض بچه‌می‌گیرن دارن؟ میگه ابن تیمیه چیکار کنه؟ بله، عمر ابن تیمیه رد بر امامیه نوشت. ماتبه من ما اهل سنتين که ما امامیه نیستیم ما خلفیابن ما باقر صدریخه خلفای دوم عثمان خلفای دوم خلفای دوم عمر خطا خلفای دوم عثمان خلفای چهارم و معری بن ذوال خلفای ما بن ما ابتدا خلفا راشدین داشتیم برای خود از ما حب صحابه هست که بغض صحابه بشا احمد ما نیست ما راه رو این میبینیم حالا راه هدایت رو این یعنی حکم بر مخالفین خودمون که جهنمی نه درست رسول گفتن امت من 70 صفر میشن همش در جهنم اند یکی ناجی دلیل ناجی بودن این نیست که غیر ها مثلا معتزله یا اشاعره حکم بدیم بگیم اینها جهنم خالد مخلد در جهنم کافرشون خیر ما تکفیر نمی کنیم اونها رو شاید بگیم کفره الله کسی که بگه بدان بخنان. بخنان. و اینکه پوشش اثر معلوم نماز بود سر معتصرم نماز بود پوشش واثقن نماز بود و دستور میدادن پوشش اثر نماز بخونه میخونن تشویرش نمیکرد هرچه شب خودش قائلم این بود چرا چون فرق میداد بین عذر عذر به جهل میداد فرق میداد بین فعل و فاعل فاعل و معذور میدونسه جاهل بود ولی فعل کفر میدونسه لازمه ای این نیست که هر کسی در فعل کفر افتاد کافر باشه اون شخصی که شدت خوشالی گفت اللهم انت عبد وانا ربك هر پیش بل خودش کافر شد نه خطا می شفته الفرح اشتباه کرد شو در اشتباه میکنه تعبیری داره پس اولیش که ما حکم بر راه میرین فریقا حدا راه راه هدایت و راه گمراهی اشخاص حکمش بعد از اقامته و و حجته بیان محاجاته حکم بر اشخاص نیست حکم بر راهه راه خدا این, این راه غیر خداست و در بر این نیست این راه غیر خداست یعنی خلاص خالد مخلد در جهنم حکم کفر هیچ کس از ایمن نداده کثیرا دست اهل اهوا اهل بدعت کافرن بلکه اهل بدعت توبیخ میشن در روز قیامت اولین توبیخشون در روز قیامت کجاست حدیث از صحیح بخاری وقتی که میان وارد حوض رسول الله صلی الله علیه وسلم بشن بشند رسول میگه اصحاب امام امت من بعد اینکه جبرئیل میگه یا رسول لا تدري من احدث من بعد النبي ان يتبدع في الورده اصحاب رسول الله خوانده <متنجان> میشن نه اینکه اهل رسالت اهل من اهل دین رسوال الله اهل دین اهل ملت با هستن اهل من لا رسول به اندازه گناهشون به اندازه یک گناه به اندازه بدعتشون گناهشون باید عذاب ببینم این یک مطلب مطلب دوم چون ما گفتیم این فرقه ناجیه هست یا این راه نجاته دلیل نیست که من بر خودم شک بدم که من بهشیام من نجاتی یافتم خدا میدونه من چقدر گناهان داشته باشم من شاید بله بدم این راه نجاته این راه حق بر راه بدن ولی بله میتونم به خودم بدن بدم من بهشتی کی میتونه از این جنب حق بکنه که بله من بهشتیم ام خدا مرا عذاب نمیده کسی میتونه والله هیچ کس نمیتونه حق بده بر خودش هیچ کس نمیتونه حق بر خودش بده که بگه من بهشتیم خدا از اسرار ما باخبره خدا از تمام ما باخبره خدا, با خدا میدونه چقدر گناه داریم کسی نمیتونه بر خودش پس که ما میگیم این راه گمراهی حب بر اشخاص نیست که ما میگیم این راه نجاته حب بر اشخاص نیست خود در خودمون نمیدیم که ما تموم شد بله ما راه نجات رو میگیم این راه نجاته خدا با ما توفیق بده تامون رو ثابت بکنه قدمم ثابت بکنه روی این راه راه اهل سنت پس اولین نشانه اهل بدعت بغض اهل سنته بغض اهل سنت چند قبل شما شاید دیده باشید یک شخص نمیگم تو واتساپ همه جا پخش شد یک مقوله یک شخصی نوشته بود من نمیخوام اسمش بگم مجهول هویه یک شخص نادان و جاهلی یک حرفی زده بود درباره امام احمد رحمه الله باب مذبره که اندر شده شده به اسم سلفیسم و حنبلی اسمو نمیدونم اینا حنبلی بودن سلفی بودن و اینها نمیدونم حکام بنی عباس بودن که اینها رو وردن ضد فرص و ایمان نجات ترس بودن و اینا بعدا نمیدونم دین رو تبدیل به یک قومیت دین و تبدیل به قومیتی بکنن و نجات ترسی بکنن و نمیدونم درسته بر ایرانی ها بودن و بعد این هر های چرند مفت حیفه که وقت خودش اینجا تلف بکنه فقط کافی هست در اون مقاله که که اون شخص مدرزانه اومده بود تعله در این امام در این امامی که حرفی جز کس از قرآن سنت نداشت تعله در این امام وارد کرده بود والله هم ولله هم بغضش رو داریم هر کسی که بغض عیمه اهل سنت رو داشته باشه و نگفته نمونه توی این کشوری که ما زندگی میکنیم، در این در کشور خودمون عیمه چارمتب محترم هست وجرم نیست یک کسی حنبلی باشه یک کسی مالکی باشه یک کسی شافعی باشه یک کسی حنفی باشه نه اعتقاد نه در فکر جرم نیست سلفیت به این که مثلا بفر اعتقاد ما سلف چار ائمه باشه جرم نیست که این شخص نادان به عنوان یک جرم و به عنوان اینکه داعش زایید شده فکر حنبلی هاست این شخص خودش مجرمه این شخص ناسازگاری نسبت به این این شخص مجرمه اگر قدرتی داشتیم اگر زبانی داشتیم باید این چنین اشخاصی به پای محاکمه میکشندیم که اینها دادن خلاف قانون دارن حرف می‌زنن جز قوانین جمهوری اسلامیه که اگر کسی بیاد توهینی به یک دین و مذهب و قائل باید موقعه قانون بشه باید این اشخاصا باید میز قانون بنشینن و محاکمه بشن به چه حقی اومدن توهینی به یکی از ائمه از ائمه اهل سنت بگن حضرت گفتین چه شخصی که بیاد اچنین هر بزنه و بیاد به بدی یاد بکنه و بعد افکار تندرویی را یا افکاری که ضد اقوال اهل سنته این عقیده صاف و پاکی که ما میکنیم که در راستای قرآن و سنته بیاد افکار نادرست را به این امام نسبت بده این یک طرف قضیه طرف دوم قضیه بحث سایت اصلاح هست نمیدونم دونم چیزی چیز سبب شد که این سایت بیاد این مقاله را بیارن از این جماعت از این حزب بیان این مقاله را بیارن و بعد خودشون هم حرف بکنند توی سایت خودشون یک پنج تا امتقاداتو نخ داشتن روی این مقاله این محسن نام در بحث حنبدیس و است. بعد اومدن یک حرفی سخنی زدن در بحث سلفیت گفتن این اینکه اصلاح سلفی درست بمانند خود فرقه های کلامی فقی مسلمانان دوچار چندانگی تنوع و گاه تناقضه های بسیار است سلفیت به صورت تناقض، با گروهای بسیاری نمیدونم فلان حزب نور و حزب نور سلفی و اون قدامفیان سعودی و دیگران خودش رو منتسب به سلفیت میدونن و بعد آورده که اساسی نداره سلفیت، سلفیتی این هیچ چیزی نیست، هر کسی ادعا میکنه که من سلفیام، نمیخوام اینجا بیا پاسخ بدم، نیاز به پاسخ نداره. این حرف نیاز به پاسخ نداره. این طرف نشانه بر اینه که این شخصی که اومده این چنین سخنانی رو گفته هیچ چیز از قرآن و سنت نمیده هیچ چیز از عقیده و اعتقاد نمی این شخص اومده بین آلودگی و نجاست و بین تهرات و قاکی مثل آب دو تا با هم دیگه قاطی می کنه جامن و مثل احمد بن حمبله احمد بن که مثلا آم بل پیرو و قرآن و سنت بود به فهم مثل این راه سلفیات مثل کسانیان که راحلون راه رو رو رو رو عرسو بودن از جه مصافان و جه ابن درهم به راه ارشدی بودن این دو تا سلفیت یک واضحه هست که همه رو در بر میگیره همه کس ادعاش داره همه مسلمان رو در بر میگیره خیر والله سلفیت همه رو در بر نمیگیره سلفیت یه چیز واضحیه نه اون چیزی که شما میگید واضح نیست سلفیت واضحه نو سلفیت رو اون چیزی میدانیم که ما محمد داشتوسی میکنه تمسک به قران و سنت که فهمه سلفاون ما این سلفیت امام محمد صلیفی بود، شافعی صلافی بود، ابو حنیف صلیفی بود، مالکم صلیفی بود. همه اینها صلیفی بودن. اگر کسی بیاد در خلاف اعتقاد اینها، چه ما تریدی، چه اشعری چه معتدلی، چه امامی هرکدی نقد باشه، کسی غیر از اینها باشه ما اینها را به عنوان یک فکر صلیفی نمی‌نیم. صلیفه مشافعیه، صلیفه مالک چه در فقه، چه در فروع، چه در اصول. چرا اصول را از فروع جدا کردیم؟ چرا گفتیم اصول و فرع؟ چون خداوند در قرآن میگه ولا مختلفین الا من رحم ربک همشرا در اختلاف الا مرسومی صحابه مرسومه صحابه اختلافات فقیا داشتن ما در اختلافات فقیه هم مشکل نداریم وقتی که اختلاف عقیدتی باشه بین ما و داعش تکفیره چطور داعش نسبت داده میشه به احمد رحمدل در صورت که ما محمد نهی از خروج میکنه نهی از تکفیر میکنه به چه میبیاد می بیاد ما محمد متهم بشه به تکفیر و کسی که حنبلی باشه بیاد متهم به تکفیر بشه و, ج... و کسی که کسی که بیاد سلفی باشه متهم به تفیر بشه این دو تا با هم دیگه جوره میاد این تذات اعتقادیه این اختلاف تذات تنوع نیست بلکه در مسائل فقی اما مالک فتوایی میداد شاگردش شافعی فتوای دیگه میداد شافعی یک میداد، میراد احمد بن حنبل فتوای دیگه در استعمال بنصوص بود یکی از این نص یک چیزی میفهمی یه چیزی، یکی دیگه چیزی دیگه ولی نص رو هر دو تا داشتن لا یصلی انا احدکم الا فی بنی قریظه نماز نخری مگر جا ادیمهو دایما دایما دایما وسط راهنما شدند ادای اخر نشه چونی یکی بود حدیث بود اینجوری بود عین نشا یکی حدیث به اشراسته دیگری نرسیده اختلاف تنوع ولی اگر اختلاف تبدیل به تضاد شد، رد نصوص شد بگه اسماء خدا بر اص قبول ندارم بگه قرآن مخلوقه، بگه نمیدونم توسل به مرده جایز اینجا هست که ما با هر شخص اختلاف داریم اینجا اختلاف تضاد صحابه حتی اختلافی نداشتند هیچ کده باعث صحابهش رو پیدا نمیکنه که بره واسه قبر رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و یا رسول الله مدد نداریم یک صحابی رو ما نداریم یک صحابی نداره که وقاط متوسل شده. ما نمی کنیم کاری که صحابه نکردن. این سلفیته سلفیات اعتقادش واضح و اعتقادش از کجا میگیره از قران و سنت صحیح میگیره و از فهم سلف امت میگیره صحابه گفتند استوا بالله علوم و ارتفاع خدا ولی عاشی میگن نوصرو کش چی غیر از اُم نمیگیم اونطوری که صحابه اونطوری که صحابه فهمیدن ما می‌فهمیم چرا اونطوری که صحابه فهمیدن ما می‌فهمیم ما باید هم بفهمیم با چون اگر صحابه ما نفهمن اگر صحابه نفهم بودند نسبت به قرآن معاذ الله رضي الله عنهم اجمعين یعنی چی یعنی قرآن اثم به حجتی نبود بر مشرکین یعنی ابوذر روز قیامت میتونه بیاد بگه پروردگارا من بخاله تو نفهمیدم همونطور که صحابه نفهمیدند اونها نمی‌فهمیدند منم نقامی دارم اتمام حجت نشودن نگاه کنی کسی که به پانصد رکاب ندارم نسبت به قرآن صحابه میذمه از استوای خدا بالا خدا بر عرش چنانچه بر زبان رسول سب جاری شده چنان چه در لغت عربی مبین اومده که استوا به معنای در خود قران به معنای علو استفاده شده لتسوع على ظهور اذا استوید انت من معك على الفل ما فکر سوارک شدی بالا رفتن برای چیز استوا میاد یک شخصی بیاد برخلاب ابو العالیه برخلاب ابن عباس برخلاب صحابه و طابقی بیاد بگه ایسا همونها درست بوده فهم من درسته پس ما میگیم ابو جهل و ابو دارن چون قرآن برایشون فهمیدنی نبود صحابه هم نتونستن بفهمن حالا ما داریم میفهمیم ما فهمیده ما میدونیم ما میفهمیم صحابه نفهم بودن مشکل اینه من بعضی ناقص همه با شی نشانه روز قیامت هم باید معذور بشن با حاضر هیچ وقت اینطوری نیست صحابه فهمیدن بودن آگاه‌ترین بودن سخن خدا را فهمیدن و سخن خدا را بودن چرا نمیگم این که اونها بعیدند فاین امنوا بمثل ما امنتم به فقد احتدوا اولین نشانه اهل بدعت گفتیم بغض اهل سنت حالا آه چه از صحابهش از ابوبکر و عمرش چه از علما از ابن سیرین و نه بدونا سعید رسیب تا امه چارگانه تا بعد از بون تا عصر حاضرمون هر کدوم پیروی راه رسول الله بودن متمسک با قرامی بخواد البانی باشه بینباز باشه ابن والله حبشون فالله داریم والله حبشون فالله داریم دوستشون فالله داریم اونها عمرشون را در راه دین سرف کردند اهل دنیا نبودن تاجر نبودند درباری نبودند اهل دربار نبودند. اونها از خدا می ترسیدن متقی بودن و بدلک دان الاسقیاء و افصحو ما در حایه داشتیم وقتی که توصیه میکنه راه سلف را بگیرید میگه, میگه چه؟ میگه بدون که این دینی که من دارم بهتون میگم این چیزهایی که دارم بهتون میگم در این نبیان نصیحتتون میکنم این راه بزرگان متقی بود. و این چنین اومدن سخن گفتن درباره دین تو هم دینت مثل دین اونها بذلک بذلک دان الاثقیا دین احمد بن هیچ تفاوتی با دین شافعی نداشت هیچ تفاوتی با دین مالک نداشت دینشون یکی بود این دین عند الله الاسلام اسلام واقعی اونچنان که قرآن و سنت میگه تصفیدن و تمسک به قرآن و سنت به فهم صرف این چیزی که خدا من لازم خاصه و این چیزی که ما محمد توصیه میکنه. و کسی بخواد بغض یکی از اینها داشته باشه ما هم بغضش داریم پر الله. از علامت هاشون دشمنی و سکوت در مقابل باطن دشمنیشون با اهل سنت با حمز و لمف حشوی سلفی تندرو متچدد مدخلی جامی نمیدونم دونم نمیدونم ظاهری مشبهه القاب دادنه لقب می داد. این مدخلیه این تندروه این جامعه این نمیدونم ظاهریه این نمیدونم حشویه کتاب از قدیم بوده اسباب تعمق والله من اسم مدخلی از زبونا بیرینو ما الان اگر کسی گفت عقیده ما محمد رو بگیریم این کتاب رو ما داریم شرح میدیم هیچ وقت از اهل بدع کسی نمیاد این کتاب رو شرح بده چون بر علیه خودشه هیچ وقت نه داعی و ما غیر داعیش تفکینی نبوده کتاب شرح بده چون بر علی خودشه الان ما داریم کتاب رو شرح میدیم بر منهاج اهل سنت فورا وقتی گفتی ب اهل بدعت نشینا اینا ما داخلن چرا چون ربیع مقلی جزء کسانی بود اولی کسانی که ما در این بر اهل بدعت دادیم و رد بر مخالفین بر اهل سنت داشت رد کسانی که بغض صحابه داشتن یا از اونها بدی کرد. مثل رد سید خود داد کتاب کتاب العواصم فیما فی في كتب سید قطب القواصم و اومد دفاع صحابه کرد گفت که اینجا سیت خود اشتباه کرده یک دو سه چهار حالا ما کار داری که بگه لحش دنده بن ما بحثمون اینه که اون الان خدا ما میگه جزای خیرش از ما مصلل مننااب بده که اومد گفت که واجد این بدی ها تو کتاب هست تعیز بکنیم ما باشا به صحابه داشته باشیم و کسانی که ا صحاب بدی یاد میکنن ازش پریز بکنیم. این کار که اینها این ها کرد. به ای کسی بیا صحمت میذاره به ما میگه شما مخلی هستید مخال مخالیت چیه فتاب مذهب ما چیه. ما میگیم ای دروغگو چند بار ما به حج شخروی نشستیم کجا دیدیم عدالت را گرفتیم اگر به ما میگفتید شافعی یا میگفتید فیکره تنفی بله چون خیلی از احکام فقیم و احکام اعتقادی من از اونها میگیریم ولی چی اومد خریته چون ما میگیم که تضفیر نکنید شما میگیم خروج برای علی درست نیست شما میگیم کسانی که دعوتگر به این دعوتان پیروشون ننشین نباشید از اونها نشن نشنوید با اونها ننشینید چه کسی دعوت بده و چه کسی هوادار اینها باشه ده پا سنگ اینها را به سینه بزنه ما بهشون آبمون در یک جون نمیره نمیتونیم بشینیم نمیتونیم کتابشون رو بخونیم نمیتونیم کسانی که طرفدار بغض صحابه ان یا کسانی که که بدبینی میکنن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتونیم بهشون از یک آب بخوریم بنشاید شاید علیکم داشته باشیم شاید سر یک بشینیم ولی قلب به خاطر بغضشون نسبت به اصحاب بغضشون داریم الان میخواد هر کسی باشه در مقابل فکر نکنید که این بغض از ماست اونها هم بدتر از اون بغض مادر اونها به خون ما دست نند اونها شوهر پولم بذارن بگن آقا ده میلیون 20 میلیون سر فلانی رو بزنید برای ما بیارید تا این قاعده اونها معادت و دوشری دارن را از لقب دادن بلی خداوند ما را راه گرد از لقب دادن از توهین کردن ولی بله شما میبینید علامت مخالف مخالفین و اهل سنت چیه؟ تعنоздن، دادن، همزلمز کردن، وایوله کلی همه مزت لومه ده. کردن، مدخلی و جامی، تندرو، متشدد، خوش، بی حکم. فقط تا، فقط تا. یعنی مثل که هیچ خوبی در اینها نیست. وقتی که بحث از یک کسی که بغض صحابه داره میکنی. سنگش را بید نه آدم خوبی ها داره بدیها داره الذيین عصرنا قو تبون اصلن سان پاس خوبشه و یه بحث شبی نه نه نه نه نه دیگه نزدکش نشد. این دیگه خلاص همدرش رو بعد اینها طول رون. بهعم محمد نه اب تامیه نه وبا خودت داری دیگه اگر میسم حق گفت تش بشننو ح چرا نمیخواد کتاب این رو بخونین سخال این رو بشننوی مگه چی توشه؟ یا هم کتاب ت شما میگه نبرید حرکتی خوب داره بد داره خوبی ها رو بگیرین. ابن دا خوب داره بد داره ما خوبی ها میگیریم. چرا شما برای ما نمیپذیرید ولی از ما توقع دارید که ما با اینطوری عمل بکنیم این منهجی که متاسفانه اهل بلاد داشت احمد بن سنان القطان امام احمد دشوادی امام حاتم دشوادی که سنت صحیح میگه که نیست الدنيا مبتدع الا هو يبغض اهل الحديث بخاری مسلم ابو داوود خود اینها رو نمیشناسه نمیشناسن سنت علم خیلی‌ها هستن که ادعای علم دارن چون بريد بگيد امام محمد شيعه نميدونه امام احمد كيه و كتاب شيعه نميدونه ابو داود كيه كتاب شيعه نه اينكه نميشناسه بغضش نم داره فعل ابدا الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه كسي گه دل دين دياره بدرگزار باشه راسرو يك فکر بد باشه دیگه حب حديث از قلبش ميره دیگه براش حديث مگه رحله نيشناله رسول الله شي گفته كي نگوفته ابو نصر فقيه ميگه ليس شيئا اسقل على اهل الالحاد ولا ابغض هم من سماع الحدیث و روایت به اسناده چیزی که سنگین‌تر در اهل بدعت بچنین حدیث و گفتن حدیث نیست. حدیث هست میگن بله حدیث دروخ، چی میشه حدیث صحیح، میگه حدیث صحیح و خب مختصر صحیح بخاری ریاض صالحی چیزی دیگه شما بگید فلان مفکر و فلان دعوتگر و فلان عالم بخونید، خب این حدیث رسول الله بخونید. کسانی که این فلان مفكر و فلان اندیشمند و فلان نمیدونم غرب و نمیدونم از اون اشخاص بشنویم امام ابو عثمان صابون نمیگیه انا رايت اهل بدع في هذه الاسماء التي لقوا بها اهل السنة سلكوا فيها مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميجي مثل مشكين تركوا هم دي كده ندارا القول فيها فتماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم, شاعراً وبعضهم مجنونا وبعضهم مفثونا وبعضهم مختلفة مختلفا كذابة وكان النبي من من تلك المعايب بعيدا بريا لما ان قلت ساحر وجودر ودروغو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا كذلك المكتدراء خذلهم الله اكتسموا القول في حملة أكباره ونقلت آثاره وروات أحاديثه المهتدين به, به المهتدين بسنته بل هم شنين مثل إنشاء كبير وإلقاء أوراق مينميس خذلهم الله يندر نقد ناقلين أحاديث رسول الله عليه نقد ناقلين أحاديث رسول الله عليه وسلم مشتی افتراه و دروب میبندن و هرچی از زهرشون درمیاد نسبت میدن به این ایممون کارشون اهل بدعت اینه این علامتشونه بغضشون و اعلان دشمنی باهشون اینها از دورانی که اینجا به همون ابو صابونی نقل کنه از ده قرن قبل تا الان همچنان با اهل بدعت همینه سومین بومین علامتشون همیشه هم کمک میگیرن از قدرت برای شکست فکر مقالف خودشون برای سرکوب کردن، ما نما قالیبین خلصن همیشه از خودتیتون استفاده کردن مثل کاری که بر احمد بن کردن. کرده کو تا اخشالو زندونی هست مثل بی زندون جور احمد بن حنبل مهمین بس چرا ابن تیمی حق می احمد بن حنبل دفاع از میکنه ابن تیمی هیچ کاری دیگه نداشت فقط دفاع از سنت حدیث رسول الله صلی الله و سرتش بس کارو دیگه نبود البانی از سوریه بیرونش کردن رفت در به سونه در به سونه بیرون شد مراده. مراذ مراذبه دوباره کناینده شد بیرون چون چرا تن totally میزنه هر, حدیث می زد. هر حق شخص میزنه و اهل بغضه همیشه کمک می‌گیرن از زور و بازو بر علیه چی بر علیه اهل سنت مثلا البانی به چی متهم شد این بغض ائمه دعوت محمد و وهاب داره و نمی‌دونن بغض نمی‌دونن تنابل داره بغض فلان داره از این بچت بهشتن امه طیبی نمی‌دونم بغض نمی‌دونم مذاهب رو بهش نسبت دادن گفتن که بغض ابو حنیفه داره بغض فلان داره ومات کتاب نشرف بالملام عن ائمه العالم لو میبر سرغلیش با اهمی نیست بر ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد نیست شاد حدیث پیشو مدرسیده شاد نفهمیدن عذ بهشو میدن میات این کتاب بنویسه در دفعه از خودش امام احمد همکنی همیشه هم همینطوره علمان هم اینطوره تو خیلی از مناطق شافعی مذهبه اگر یک شخصی اومد کنوت فاج نکون فلان اهل این سلفی این تو درو بشو فلان گزارشش رو داد گفت درست دروند بنویس خیلی جاها هم اگر یک شخص در جایی که احنافن آمین گفت از مسئله بیرونش میکنن هیچ فردا گزارشی هم دادن فردا هم باید چند سال حبس و بدنیان باید بکشه چرا یک مسئله فقی یک مسئله فقی که بین ائمه هم بود چی میشه برایشون خیلی ها براتون انحراف اعتقادی مطرح نیست اگر یک انحراف فقی که شما به قول خودشون باید باش بر بشه مبارزه بشه همین یک از علامتاست شما نگاه فرقه هایی که در اسلام به وجود اومدن، فرقه هایی که به وجود اومدن، فرقها فرق مختلف بودن. ما 4 نوع فرقه داریم. یکی فرق فرقی فرق اعتقادیه. مثلا جهم مسفهم، شاکر ده جهم و درهم، جهم ده تالوذ، تالوذ هم شاکر ده لبی. اصناف هیچ وقت نه جهم، نه جهم مسفهم، نه جهم درهم، شاکر نبودن، شاکر ده هم نبودن. یک شخص منحرف تابع عرسو بود. تابع بلاط بود. تمام احمد بن بش ردوا علی جهمیه، درهم هم میشه رد علی جهمیه، اکبرشون داده. ادعای اسلام رو کردن گفتن شما مسلمان همه اشتباه دارید نیکن تابعی نیکن اشتباه گفتن صحابت اشتباه گفتن اومدن امه رد بر اونها نمشتن در طول تاریخ این بود کسانی اومدن فرقی برای خودشون تشکیل دادن ایک فرقه اعتقادی معتذلی اشاعره ماتینیه یک فرقه های اعتقادی اومدن زیادت ایمان و نفصال شکار کردن اومدن مسائل. از دین خلق بس کلام خدا قرآن کلام خدا را اینطور کردن مثل متجله است. استوا خدا را بر هرش اینطور کردن. این اختلا این افتراقات خدا در قرآن میگه ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. نشد مثل آنها که افتراق و اختلاف بعد از من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه بینات بهشون اومد. بعد از اینکه ادله ها از قرآن براشون اصننت درش من ولات کل الذين تفرقو و لا تكون من المشركين الذين و دينهم و شيعة مثل المشركين اكيد متفرق نشید اینا تشکیل فرقه دادن برای خودشون واصله حتی از تابعین جدا شد یک فرقه به اسم معتزله ساخت این تفرق اعتقادیه ما این چیزا ذاتی قبول نداریم یک شخصی بیاد جمع صحابه من متابین و یه چیز بگن بعد بیاد یک شخصی خودش جدا بکنه استفاقات و سیاسی داریم خوارج خوارج معروفون بعبادات بالصلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدن شما نمازتون يحترى حلكم صلاته نماز قوت در مقابل تحقيل مثل روزتون در مقابل روزشون ظاهرشون أهل دينه، ظاهرشون أهل ديانته ولكن هنا يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان مسأل مرارا ميكوشن كفارا رهو ميكونا، داعشا ميكونا دوتا فرقك هم جدا شدت جبهن وصلا بداعش هم ديگار ميكوشن مشتكين بلان فقط تماشا میکنن توی اخبار فقط تماشا میکنن داریم خودمون هم دیگه توی عراق توی سوریه هم دیگر رو داریم میکشیم این اقتراف سیاسیه توی سیاست هم مشکل داره هر کدوم روی kursi میتازه میجنگ برای رسیدن به kursi اینطوری بودیم ما هیچ گونه حزب و گروه و فرقه ای که بخواد در دین از اسلام جدا باشه خودش رو یک شاخه جدا بکنه قبول نداریم هیچ جماعتی رو قبول نداریم چه به اسم جماعات چه اسم حزب چه به اسم گروه دسته باند تشکیل تیم هر چیزی میخواد باشه ما دست دست کردن مصالحه قبول نداریم چی میخواد خواست اعتقادی باشه چه می خواست چی, چی می سیاسی باشه خدا در قرآن میگه تا این تنزع تو فیشه ان الله و رسول اگر تنوع اختلاف کردی بیا حلش بخورید برگردید به قرآن و سنت نه اینکه بعضی ها شعار میدن یعذرو بعضا فی في مخالفت نبی عذرا هم دیگه بدید هیچ کس نهی از منکر نکنه نه اینکه این اشتباه این درسته این حدیثه این حدیثه به هم دیگه دست دیتی تموشو رد خیر والتكم منكم أمّة يأمرون بال بالتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ينوهون عن المنكر بايت النشأة وسماء أمّة إسلامي النشأة شو بايت أمر معروف ناهز منكر بكونه هيز منكر نكون كم شيء لعن الذين كذبوا من بني إسرائيل على لسان داوود شرّ شرّ ما العون شدّان أذبلي كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبأس ما كانوا يفعلون کن ویتنه ها نهی از منکر میکردن کردن عدم نهیشون دست کشیدن عدم انکارشون بر منکر سبب شد که چی؟ این کارشون کار پسی و بدی بشه نبیز به ما افعلون عدم نهی از شد اصادرشون سکوتشون در مقابل باطل کار بدی و پسیه نبیز به ما کاری افعلون ما برای همین رسول خدا برای همین خدا بلند شد که از برای همین امر بعد از مک و طرف ما میگه نه امر برای از مکر نکن نه مصلحتی جواب میدی چیز نگی نه نا مصلحتی جواب میدی که دفاع صحابه نکنی واجم دینمونه مذهبمونه اعتقادمونونه باید بگیم قبول نداریم که اسلام شاخه شاخه بشه چی میخواد اعتقادی چی میخواد سیاسی چی میخواد فقی که سبب دشمنی بشه اختلافات فقی بود بلکه نبو دشمنی نگی بگیم پشت سر حنفی نماز نخون پشت سر شافعی نماز نخون امام احمد پشت سر نماز خون که مشکل اعتقادی داشت دیگه چی براست میاد که مشکل فقهی داره از نظرت تو درستی از نظر خوش درسته وظیفه‌ت پشت سر نماز می‌خونی این نشانه اهل ایمانه که نماز بخونه پشت سر هر آدم نیک و خیر نیکی این اعتقاد داخل سنت میاد شده امام احمد میگه این مراجعمون روشه و همچنین که اختلافات افسراقات سلوکی باشه شخصی بیاد یک گروهی برای خودش تشکیل میده برای رفتن معمولا کسب اموال قبول نداری یک گروهی یک شاخص یکی ازش برای خودش بشه بیاد دیاد بگیره قاضییه یکی قاضیانیه یکی نمیدونم تجاریه قبول نداری مسلم شاخص بشه. امت اسلام یک امته امت واحدان نه امت متشابه که دشمن هم دیگران کاره به دیگر رو میزنن زیادی هم دیگر رو میزنن می امت اسلام یک امته امتان واحد هستیم اما کسی بخواد بیاد خودش رو جدا بکنه شاخص بشه. بیعت برای خودش اختراع بکنه که در دین احداثه من احدد بی امر نهاد ما نیست رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایان اگر بوی ال ایمان بوی ال اخر فخصم اگر امامی بیعت داده شود اگر با یک کافری بیعت داده شود درستیز بکسه دیگه بیعت داده بشه یک شخصی میاد برای حزب خودش بیعت انجام میکنه دیگری میاد برای حزب خودش بیعت انجام میکنه ما اینجوریین بدعت را در دین نمیپذیریم چی میخواست برای گروه سیاسی باشه که میخواد می‌خواد برای گروه سلوکی و رفتاری باشه مثل تصوف اینها مسائل هست از افتراقاتی که امام شاطبی در کتاب الاعتصام یاد می‌کنه کتاب الاعتصام در دفاع از حمایت احادیث رسول الله فرقی و نهی از فرقه یاد می‌کنه که چطور انسان میتونه به حبل خدا و به بحمد الله جميعا ولا تفرقو در این آیه اومده این کتاب رو نوشته و اساس این کتاب الاعتصام از این کلمه‌ای گرفته آیه و بحبل الله جميعا ولا تفرق بحبل خدا چیه قرآن و سنت بفرمه صدف الامت راهی دروش نبودن تفرقه این بخوام چه فرق فرقه اعتقادی ایجاد بکنیم چه سیاسی چه سلوکی و چه تعصب تعصف بخرش دادن بده نه اینکه الان ما به فرص شخصی چون علمش نمیرسه تا به ابو حنیفه بشه شد خودشو میدن و خوداش ولی اینکه شخص تعصف بخرش بده که نه فلانی اشتمام میکنه خودشم نمیدونم نمیدونه حق نذا به نظر نظر به قداوره کسی شخص میگه من مُقلدم از این طرف بیات آل بانی تجریح میکنه احمد بن حنبل تجریح میکنه امام شافعی تجریح میکنه تا جای بعضی از تعصبات نسبت به ائمه رشیده که میان احادیث دروغ و درش وارد میکنن شده بعضی از متعصبین احناف بیدن مثلا در رد امام شافعی گفتن علی امتی زمان یخرج علیکم رجلا اشد علیکم من ادریس له یبروزی میاد شخصی میاد بر امت من از ابلیس بر سر باطل افش به شافعی محمد بن ندری شافعی تعصب تعصب بده عصبیت بده مت تعصب را قبول نداریم حتی نسبت به البانی حتی نسبت به ابن با تعصب را قبول نداریم چون رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن تعصب دعوی جاهلیه تعصب نسبت به قرآن و سنت و سلف من قبول نداریم ولی تعصب نسبت افراد تعتقد بله اگر امر یک شخص قرار دادم غیر از و سنت قبول نداریم رسول خدا به اینکه مهاجرین و انصار به من رسول گفت: او والجاهلية ما جماعت حزب سلفی النور در مصر قبول نداریم حزبیات در اسلام قبول ندارين چرا چون رسول سلام گفت او دعو الجاهلیه برای مهاجرین و انصار گفتند این دعوای جاهلیت حزب حزبدم تعصب نیست باشه ما تحذب را قبول نداریم در اسلام و تحذب را بدعت می در اسلام این علامت های اهل بدعت بود که در احادیث بهش اشاره شده در نمیخوام دیگه بیشتران این در این مطلب سخن بگم علامت بیش از اینه اما اهل سنت من فقط از اهل سنت در فقط به چند تا حرف فقط اشاره می کنم امام ابو عثمان سابونی می بید احد علامات اهل سنت حبهم السنت والله حب وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضوا لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم إلى دار البوار وبغض كثاني أهل بدعة بدعباتنا مردورة بجهنم كرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن شاء الله هي خيامات يؤذ كادا أئميك مرد عبد بجهنم إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاع إنما ينتزعه بقلب العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتووا بغير علم فضلوا أضلوا دعات على باب جهنم دعوة الدران درج جهنم كسانك دعوة جرانت بأدب لدعتك ودشون كسانك دعوة بكم راهيم دان بغض الله رضي وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله خطايف فاتوا دار قلب مقصود حب تمامي اي اهل سنتو دارين و قيل لا يكفر ابن حيا من السني قال الذي إذا ذكرت الاهواء لم يقضى بشيء منها سنكتك كذب اهل بتا سخن گفتی بدش نیاد بش بد نخوره اگر گفتی که اونها اشتباه میکنند در مسائل اعتقادی فلان عقلی یا فلان کار سبب نشه که بش بخوره که چرا لاری داری بد بیوش میکنی بله این نشانه هایی است که امام صادقانی به اش اشاره میکنه به فرعیاش که شواتی باز اجتار کتاب بازد صامی میکنه، بیش هل من به که دفوامی کنم تکه باقی واقعیت باده دهده تسر ها شو لقائم که سبحانک اللهم و حمدک صلی اللهم محمد و آل آل محمد